مصنویه، معنوی مولوی. برنامه 25. گفتن پیغمبر و گوش رکابدار امیر المؤمنین علی که کشتن علی بر دست تو خواهد بودن خبرت کردم. من چنان مردم که بر خونی خیش نوش لطف من نشد در قهر نیش گفت پیغمبر با گوش چاکرم کو برد روز زگردن این سرم کرد آگاه آن رسول از وحی دوست که هلاکم عاقبت بر دست اوست او همه گوید بکش پیشین مرا تا نیاید از من این منکر خطا من همه گویم چون مرگ من ز توست با قضا من چون توانم حیل جاست او همه افتد با پیشم کیکریم، کریم مرمرا کن از برای حق دونیم تا نیاید بر من این انجام بد تا نسوزد جان من بر جان خود من همی گویم برو جف القلم زان قلم بس سرنگون گردد علم هیچ بغض نیست در جانم ز تو زان که این را من نمیدانم ز تو آلت حقی تو فاعل دست حق چون زنم بر آلت حق تا گفت او پس آن قصاص از بحر چیست گفت هم از حق آن سر خفیست اگر کند بر فعل خود او اعتراض ذ اعتراض خود برویاند ریاض اعتراض او را رسد بر فعل خود زانکه که در قهر است و در لطف او اهد. ان در این شهر حوادث میر اوست در ممالک مالک تدبیر اوست آلت خود را اگر او بشکند آن شکسته گشته را نیکو کند رمز ننسخ آیتن آن ها، نعت خیرن در عقب میدان مها هر شریعت را که حق منسوخ کرد، او گیا برد و عوض آورد ورد، شب کند منسوخ شغل روز را، بین جمادی خرد افروز را، باز شب منسوخ شد از نور روز، تا جمادی سوخت زن آتش فروز، گرچه ظلمت آمدان نوم و صبات نی درون ظلمت است آب حیات نی آن ظلمت خردها تازه شد سکته سرمایه آوازه شد که زدها زدها آمد پدید در سویدا روشنایی آفرید جنگ پیغمبر مدار صلح شد. صلح این آخر زمان زان جنگ بود. صد هزاران سربرید آن دلستان تا امان یابد سر اهل جهان باغبان زان میبرد شاخ مزر تا بیابد نخل قامتها و بر. میکند از باغ دانا، آن هشیش تا نماید باغ و میوه خرمیش میکند دندان بد را آن طبیب تا رهد از درد و بیماری حبیب پس زیادت ها درون نقص هاست مرشهیدان را حیات اندر فناست چون بریده گشت حلق رزق خار، یرزقون شد گوار. حلق حیوان چون بریده شد با عدل، حلق انسان رست و افزون گشت فضل، حلق انسان چون ببرت هین ببین، تا چه زاید کن قیاس آن بر این، حلق سالس زاید و تیمار او شربت حق باشد و انوار او حلقه ببریده خورد شربت ولی حلقه از لا مرده در بلی بس کنی دون همت کوتاه بنان تا کیت باشد حیات جان بنان زن نداری میوه مانند بید، کابرو رو بردی پی نان سپید، گر ندارد صبر زینان جان حس کیمیا را گیر و زرگردان تو مس جامشویی کرد خواهی ای فلان، رو مگردان از محل گازران، گر چنان بشکست مر روزی تو را در شکسته بند پیچ و برترا چون شکسته بند آمد دست او پس رفو باشد یقین اشکست او گر تو آن را بشکنی گوید بیا تو درستش کن نداری دست و پا پس شکستن حق او باشد که او مر شکست گشت را داند رفو، آن که داند دوخت، او داند درید. هرچرا بفروخت، نیکوتر خرید. خانه را ویران کند زیر و زبر. پس به یک ساعت کند معمورتر. گر یکی سر را ببرد از بدن، صد هزاران سر برارد در زمان. گر نفرمودی قصاص برجنات یا نگفتی فلقصاص آمد حیات خود کرا زهره بودی تا او خود بر اسیر حکم حق تیغ زند زان که داند هر که چشمش را گشود کانکشنده سخره تقدیر بود هر را آن حکم بر سر آمدی بر سر فرزند هم تیغه زدی رو بترسو تا انه کمزن بربدان پیش دام حگم اجز خود بدان تحجب کردن آدم علیه السلام از زلالت ابلیس لعین و باوردن. چشم آدم بر بلیس کوشقی است از حقارت و از زیافت بنگری است بینی کرد و آمد خودگزین خنده زد برکار ابلیس لعین بانگ برزد غیرت حق کیسفی تو نمیدانیز اسرار خفی پوستین را باشگونه گر کند کوه را از بیخ و از بون بر کند آدم آندم بر دارد. صد بلیس نو مسلمان آورد. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چونین گستاخ نندی شمدگر. یا غیاس المستقیسین هدنا لفت بالعلوم والغنا، لا تزغ قلبا هدیت بالکرم، وصرف سوال نزی خط القلم بگذران از جان ما سوء قضا و مبر ما راز اخوان صفا تلختر از فرقت تو هیچ نیست بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست رخت ما هم رخت ما را راه زن جسم ما مرجان ما را جا مکن دست ما چون پای ما را می خورد، به امان تو کسی جان چون برد. ور برد جان زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ادبار و بیم. زان که جان چون واصل جانان نبود، تا با باخش کور است و کبود. چون تو ندهی جان خود بردهگیر. جان که به تو زنده باشد مرده گیر. گر تو تنه می زنی بر بندگان مر تو را آن می رسد. ای کامران ور تو ماه و مهر را گوی جفا ور تو قد سر را گوی دوتا ور تو چرخ و عرش را خانی حقیر ور تو کان و بر را گوی فقیر آن به نسبت با کمال تو رواست ملک اکمال فناها مرتراست که تو پاکی از خطر وزنیستی نیستان را موجد و مغنیستی آن که رویانید داند سوختن، زان که چون بدرید، داند دوختن. می بسوزد هر خزان مرباغ را، باز رویاند گل سب باغ را. کی بسوزیده برونا، تازش او بار دیگر خوب و خوبا بازش شو. چشم نرگس کور شد، بازش بساخت. حلق نی ببرید و بازش خود نواخت ما چو مصنوعیم و سانع نیستیم جز زبون و جز که قانع نیستیم ما همه نفسی و نفسی میزنیم گر نخانی ما همه آهرمنیم زانز آهرمن رهیدستیم ما که خریدی جان ما را از اما. تو اصاکش هر کرا که زندگی است. به اصاب و به اصاکش کور چیست؟ غیر تو هرچه خوش است و ناخوش است. آدمی سوز است و عین آتش است. هر کرا آتش پناه و پشت شد. هم مجوسی گشت و هم زرداشت شد. کل شیعن ما خلل باطلو، ان فضل الله غیم حاطلو. بازگشتن به حکایت امیر المؤمنین علی و مسامحت کردن او با خونی خیش، باز رو سوی علی و خونیش، وان کرم با خونی و افزونیش گفت دشمن را همی بینم بچشم، روز شب بر وی ندارم هیچ خشم زانکه مرگم همچومن خوش آمده است، مرگ من در بحث چنگ اندر زده است مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال ظاهرش مرگ و باطن زندگی ظاهرش ابتر نهان پایندگی در رحم زادن جنین را رفتن است در جهان او را زنو بشکفتن است چون مرا سوی عجل، عشق و هواست نهی لا تلقو به عیدی کم مراست. زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی شود. دانه کشتلخ تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاؤن پی من آمده است. اقتلونی یا سقاتی لایما، ان فی قتلی حیاتی دایما، ان فی موتی حیاتی یا فتا، کم افارق موتنی حتی متا، فرقتی لو لم تکن فی سكون لم یقل انا الیه راجعون، راجعان باشد که باز آید به شهر، سوی وحدت آید از تفریق دهر. افتادن رکابدار هر بار پیش امیرالمومنین علی کرم الله و چه که ای امیر مرا بکش و از این قضا برهم. باز آمد که علی زودم بکش تا نبینم آن و وقت ترش من حلالت کنم. خونم بریز تا نبیند چشم من آن راست خیز گفتمر هر ذره خونی شود خنجرن در کف به قصد تو رود یک سر مو از تو نتواند برید، چون قلم بر تو، چونان خط کشید. لیک بیغم شو، شفیع تو منم، خاجه روهم، نمملوک نم تنم. پیش من این تن ندارد قیمت، بی تن خیشم، فتا ابن الفتی. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگسدان من. آنکه او تن را بدین سان پی کند، حرس میری و خلافت کی کند. زان به ظاهر کوشدن در جاه و حاکم، تا امیران را نمایت راه و حاکم. تا امیری را دهد جان دگر تا دهد نخل خلافت را سمر بیان آنکه فتح طلبیدن غمبر علیه السلام مکه را و غیر مکه را به جهت دوستی ملک دنیا نبود بلکه به امر بود جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم آنکه او از مغزن هفت آسمان چشم و دل بربست روز امتحان از پای نظاره او هور و جان شد آفاق هر هفت آسمان خیشتن آراسته از بحر او، خود خودورا پروای غیر دوست کو آنچنان پرگشته از اجلال حق که در او هم ره نیابد آل حق لایسه، فینا نبیون مرسلو، والملک ملک و, و روح و عیزن فاقلو گفت ما زاغیم همچون زاغ نه مست سباغیم مست باغ نه چون که های افلاک و عقول چون خص آمد بر چشم رسول پس چه باشد مکه و شام و عراق که نماید او نبرد و اشتیاق آنگمان بروی زمیر بد کند که قیاس از جهل و هرس خود کند آبگین زرد چون سازی نقاب زرد بینی جمله نور آفتاب بشکنان شیشه کبود و زرد را تا شناسی گرد را و مرد را گرد فارس گرد سرف گارد گرد را تو مرد حق پنداشته گرد دید ابلیس و گفت این فرعتین چون فضایت بر من آتش جبین تا تو میبینی عزیزان را بشر دان که میراس بلیس است آن نظر نه فرزند بلیسی ای آنید پس به تو میراس آن سگ چون رسید من نییم سگ شیر حقم حق پرست شیر حق آن است که صورت برست شیر دنیا جویت اشکار و برگ شیر مولا جویت آزادی و مرگ چونکه که اندر مرگ بیند صد وجود همچو پروانه بسوزاند وجود شد هوای مرگ توق صادقان که جهودان را بد ایندم امتحان در نوبی فرمود که قوم یهود صادقان را مرگ باشد گنج و سود همچنان که آرزوی سود هست، آرزوی مرگ بردن زان به هست. ای جهودان بحر ناموس کسان، بگذرانید این تمنا بر زبان. یک جهودی اینقدر قدر زهره نداشت، چون محمد این علم را برفراشت. گفت اگر رانید این را بر زبان یک یهودی خود نماند در جهان پس یهودان مال بردند و خراج که مکن رسوا ما را ای سراج این سخن را نیست پایان پدید دست بامنده چو چشمت دوست دید گفتن امیرالمؤمنین علی کرم الله و وجههو با قرین خود که چون خدو انداختی در روی من، نفس من جن بید و اخلاص عمل نماند، مانع کشتن تو آن شد. گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به انگام پهلوان، چون خدو انداختی در روی من، نفس جن بید و تبه شد خوی من. نیم بهره حق شد و نیمی هوا، شرکتا در کار حق نبود روا. تو نگاریده کف مولاستی، آن حقی کرده من نیستی، نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست، سنگ دوست زن، گه این بشنید و نوری شد بدید، در دل او تا که زناری برید، گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوع دگر پنداشتم، تو ترازوی، احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بودهای تو تبار و اصل و خیشم بوده ای تو فروغ شمع اکیشم بوده ای من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پزرفته زو من غلام موج آن دریای نور که چونین گوهر برارت در ظهور ارزه کن بر من شهادت را که من مر تو را دیدم سرف راز زمن قرب پنجه کس خیش و قوم او آشقانه سویدین کردند رو او به تیغ هلم چندین حلق را وا خرید از تیغ و چندین خلق را تیغ هلم از طیقه آهن تیز در بل ز لشکر زفرانگیزتر خاتمه دفتر اول ایدری غالقمه دو خورده شد جوشش فکرت از آن افسرده شد گندم خورشید آدم را کسوف چون زنب شعشای بدره را خصوف اینت لطف دل که از یک مشتگل ماه او چون می شود پروین گسل نان چمانی بود خردش سود بود چونکه صورت گشت انگیزد جهود همچو خار سبز کشتر می خورد زانخورش صد نف و لذت میبرد، برد چون که آن سبزیش رفت و خوش گشت چون همان را می خورد اشتر زدشت می دراند کام و لنجش کانچنان برد مربا گشت تیغ نان بود بود آن خار سبز چونکه که صورت شد کنون خشک است و گبز تو بدان عادت که او را پیش از این خورده بودی ای وجود نازنین بر همان بو میخوری این خشک را بعد از آن کامیخت معنی با سرا گشت خاکامیز و خشک و گوشت بر زنگیا اکنون بپرهیز ای شتر سخت خاکالود می آید سخن آب تیره شد سر چه بند کن تا خدایش باز صاف و خوش کند او که تیره کرد هم صافش کند صبر آرد آرزو را نه شتاب صبر کن والله و الله عالم به سباب برنامه های مصنوی معنوی مولوی را، مینه وقت و شهباز باز ایراد تهیه و اجرا کردن.